خدمت حضار، من عشقان نیکپی هستم، نوینده این کمپلین، در واقع ما، من یکی اتفاق تحصیلات دانشگاه تهرانم. ما توی یک تیمی در غوظه سلامت فعالیت هایی داشتیم، توی این فعالیت ها ما به سری اطلاعات دست پیدا کردیم که یه مقداری بر ما جالب بود ما رو به این سمسوغ داد که ببینیم در دنیا، سرمایه بزرگ، شرکت‌های بزرگ مثل گوگل، اپل، فلیپس و غیره یا آدمای بزرگی مثل بیل گیتز چه کارهایی در زمینه سلامت دارن انجام میدن؟ تو دنیا کلن چه خبره؟ پیگیر اینها که شدیم دیدیم بیل گیتز به عنوان خب یکی از افراد خیلی ثروتمندی که میشناسیم سرمایه‌گذار بزرگ در ماکروسافت و فاندر ماکروسافت کلنا سرمایه شو یه بخش عظیمیش رو وارد حوزه سلامت کرده و برای هلسکر سرمایه گذاری کرده از اون شرکت های مثل گوگل، اپل و فلیپس سرمایه عظیمشون توی این حوزه داره انجام میشه از اونور در درباره وینچر کپیتال ها توضیح دادن دوستان یک آماری عرض میکنم از آمریکا در سال 2015 همونطور که می‌بینید حدوداً مجموعا به مقدار دو بیلیون دلار یا دو میلیارد دلار در, در آمریکا در سال 2015 فقط سرمایه گذاری شده روی بحث هیلثکیر سلامت و مراقبت از سلامت که خب نصف این عدد هم روی اپلیکیشن های سلامت و گadget های همراه و پوشیدنی سلامت صرف شده ما به این نتیجه رسیدیم که ببینیم در ایران چه خبره؟ تو ایران چه کار دارن میکنن در حوزه سلامت چه بزرگ سرمایه گذاری راستش این رسیدیم که کاری انجام نمیشه و سرعت <تص> از این، با این حجم سرمایه کاری داره انجام نمیشه بعد گفتیم ببینیم آمار ارغام وضعیت سلامت ما چطوره همونطور که میبینید پنجام درصد افرادی که توی ایران دوچار دیابت هستن از دیابت خودشون خبر ندارن یا همونطور 40 درصد افرادی که دوچار فشارخون بالا هستن از بیماریه خودشون خبر ندارن که این باعث بیماریه قلبی و عروقی و غیره میشه و... 25 حدودا 25 درصد افراد توی ایران دچار چربی خون بالا هستند که خود چربی خون دوباره باعث فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی، کلیوی، عض، دیابت و غیره حاضر از اون ما بررسی کردیم ببینیم وضعیت علانمون توی روندی که داریم پیش میرین چطوره. دیدیم باز روند خوبی نداریم تابر گفته وزیر بهداشت تا سال یعنی در سال 2030 یعنی حدودا 15 سال دیگه خزینه های درمان فقط دیابت توی ایران به 35 تریلیون تومل یا 35 هزار میلیارد دلار که به عبارت میشه 12 برابر اختلاس اخیری که انجام شد و ما همه حساب کتاب میکردیم که اگه یه دونه کارگر از زمان کوروش تا الان کار کنه و هر ما حقوق خوبی بگیره بازم این عدد نمیشه این عددی که خزینه درمان ما فقط برای دیابت تو سال 2030 هست دوازده برابرمون هده یعنی در بهترین حالت احتمالا ما سال 2030 خودمون یا بچه هامون این شکلی است. اما یه حدودی بدونیم 35 ترلیوم تومان فقط برای دیابت میشه حدوداً اگر کل خلیج فارس و دریای عمان رو پر دلار کنیم باز هم ما هزینه های درمان سال 2030 فقط برای دیابت رو هم نخواهیم داشت این گفته خود وزیر بهداشت داشته پس احتمالا نه تنها اون شکلی نیستیم، باشه. اما الان من چرا اینجا هستم میخوام از شما عزیزان دوستان اساتید دانشگاه افراد ای که اینجا هستیم و دوره هم جمع شدیم یک کار بزرگی در زمینه نوآوری یه سری صحبت های خوب در زمینه زندگی و کلن به بود وضعیت زندگی خودمون و جامعه بکنیم ما از شما میخوایم سه تا کار انجام بدیم این کمپین ما کمپین سلام به سلامتی از شما میخواد به ما بپیونید و سه تا حوزه فعالیت ما رو یه جایشو رو بگیرید یه کمکی بکنید توی اطلاع رسانی کمک کنید خودتون از این به بعد حواستون به سلامتیتون باشه و همینطور حواستون به سلامتی اطرافیانتون باشه. سه تا حوزه ای که ما داریم یکی اینه که اول فرهنگ پایش و پیشگیری و جدی بگیریم. ما توی دنیا این خیلی پیشرفت کرده و ما هنوز، رویه اینکه غنده خون چیه، فشار خون چیه، کلسترول چیه، افراد جامعه ما سوال دارن. اینو ما به عینه دیدیم. تو یک برنامه میدانی که تو برج میلاد به کمک دوستانمون داشتیم، یک کار مردمی بود. همه داکترها شرکت کردن ولی مردمی که میومدن می‌پرسیدن کولسترول همون چربی خونه؟ آیا چربی خونه. مثلا 250 خوبه یا بده؟ دیابت چیه؟ این سوالایی بود که مردم ما واقعا برشون مطرحه. ما درباره مردم هم داریم صحبت کنیم. مرسی دوم این راهکاری که ما پیشنهاد کردیم و به شدت بگیرش هستیم خوردن غذای سالمه ما های غذایی به شدت بدید درا داریم حالا من چه ساعت و سه بومی تحرک کافی ما عدم تحرک کافی توی بچه ها توی قشر جوونمون یعنی قشر زیر 18 سال و عادات غذایی ناسالم هممون دیدیم و عمارهای بحشتناکی توی این زمین وجود داره حالا من اینجا هستم از شما میخوام فقط با فرستادن دادن یه اسمس که اسم فامیلتون توش باشه به شماره هزار هزار یک یک همین الان دست کنید همه یه MS بفرستید هزینهش فقط ده تامنشون ده تومان هزینه که یک اسمMS میفرستید. حتی،, حتی حتی اگر اسمتونم ثفتتون رو برنوید یا به هر دلیلی فقط شمارهتون توی این پایگاه Sسی ما باشه این برای ما رسمیت کارمونه و از این بعد شما رو در جریان کارمون قرار میدیم و امیدواریم که شما هم توی این را کمک ما باشید که خدای نکرده شبیه اون عکس نشین. خیلی ممنون از توجهتون.